مسنوی معنوی مولوی برنامه یکسد م رجو کردن به قصه طلب کردن آن موش آن چغز را در لب جو و کشیدن سر رشته تا چغز را در آب خبر شود از طلب او. آن سرشته عشق رشته می کشد بر امید وصل چغز با بارشد، میتند بر رشته دل دم بدم که سر رشته به دست آوردم همچو تاری شد دل و جان در شهود تا سر رشته به من روی نمود خود غراب البین آمد ناگهان در شکار موش و بردش زان مکان چون بر آمد بر هوا موش از غراب منصحب شد چغز نیز از قر آب موش در منقار زاغ و چغز هم در هوا آویخته پا در رتم خلق می گفتند زاغ از مکر و چغز آبی را چگونه کرد ساید چون شدن در آب و چونش در بود چغز آبی کی کاره زاغ بود چغز گفتا این سزای آن کسی کو چو بی آبان شود جفت خسی ای فغان از یار ناجنس ای فغان هم نشین نیک جوید ای مهان عقل را افغان ز نفس پر ایوب هم بینی بده بر روی خوب عقل می گفتش که جنسیت یقین از ره معنی است نه نی از آب و تین هین مشو صورت پرست و این مگو سر جنسیت به صورت در مجو صورت آمد چون جماد و چون هجر نیست جامد را ز جنسیت خبر جان چمور و تن چو دانه گندم می کشاند سو هر دمی. مور داند کان حبوب مرتحن مستحیل و جنسمن خواهد شدن. آن یکی مور گرفت از راه جو، مور دیگر گندم بگرفت و داو جو سوی گندم نمی تازد ولی، مور سوی مور می آید بله رفتن جو سوی گندم تابع است مور را بین که به جنسش راجع است تو مگو گندم چرا شد سوی جو چشم را برخاسم نه نه برگرو مور اسود بر سر لبد سیاه مور پنهان دانه پیدا پیش راه عقل گوید چشم را نیکو نگر دانه هرگز کی رود به دانه بر زین سبب آمد سوی اصحاب کلب هست صورتها حبوب و مور قلب زان شود عیسی سوی پاکان چرخ بد ها مختلف یک جنس فرخ این قفص پیدا با آن فرخش نهان بی قفس کش کی قفص باشد روان ای خونک چشمه که اقل استش امیر آقبت بین باشد و حبر و قریر فرق زشت و نغز از عقل آورید نیز چشمی که از سیاه گفت و سپید چشم غره شد به خزرای دمن عقل گوید بر محک ماش زن آفت مرغ است چشم کام بین مخلص مرغ است عقل دام بین دام دیگر بود که عقلش در نیافت وحی غایب بین بدین سو زان شتافت جنس و ناجنس از خرد دانی شناخت سوی صورت ها نشاید زود تاخت نیست جنسیت صورت لی و لک ایسی آمد در بشر جنس ملک برکشیدش فوق این نیلی حصار مرغ گردونی چو چغزش زاغوار حسای عبدالغاوس و ربودن پریان او را و سالها میان پریان ساکن شدن او و بعد از سالها آمدن او به شهر و فرزندان خیش و باز ناشکیفتن او از آن پریان به حکم جنسیت معنی و همدلی او با ایشان شد هم جنس پری چون پری نه سال در پنهان پری شد زنش را نسل از شوی دگر بان یتیمانش مرگش در سمر که مرو را گرگ زد یا رهزنه یا فتاد اندر چهه یا مکمنه جمله فرزندانش در اشغال مست، خود نگفتنده که بابای است. بعد نه سال آمد و هم آریه، گشت پیدا باز شد متواریه، یک ماه مهمان فرزندان خیش، بود و زان پس کس ندیدش رنگ بیش، برد همجنسی پریانش چنان که رو باید روح را زخم سنان. چون بهشتی جنس جنت آمده است، همز جنسیت شود یزدانپره پرست نه نبی فرمود جود و محمده شاخ جنت دان به دنیا آمده. مهرها را جمله جنس مهر خان. قهرها را جمله جنس قهر دان. لاعبالی لاعبالی آورد. زن که جنس هم بواند اندر خرد. بود جنسیت در ادریس از نجوم. هشت سال او باز بود در قدوم در مشارق در مغارب یار او هم حدیث و محرم آثار او بعد غیبت چونکه که آورد او قدوم در زمین می گفت او درس نجوم پیش او استارگان خوش صف زده اختران در درس او حاضر شده. آنچنان که خلق آواز نجوم می شنیدند از خصوص و از عموم. جذب جنسیت کشیده تا زمین اختران را پیش او کرده مبین. هر یکی نام خود و احوال خد، باز گفته پیش او شرح رسد چیست جنسیت؟ یکی نوع نظر که بدان یا بند ره در همدگر؟ آن نظر که کرد حق در وای نهان چون نهد در تو تو گردی جنس آن هر طرف چه میکشد را نظر؟ بی خبر را کی کشاند با خبر چون که اندر مرد خوی زن نهد او مخنس گردد و گان میدهد چون نهد در زن خدا خوی نری طالب زن گردد زن سعتری چون نهد در تو صفات جبرائیل همچو فرخه بر هوا جویی سبیل منتظر بنهاده دیده در هوا از زمین بیگانه آشق بر سما چون نهد در تو صفتهای خری صد پرت گر هست بر آخر پری از په صورت نیامد موش خار از خبیسی شد زبون موش خار تعمجوی و خائن و ظلمت پرست از پنیر و فستق و دوشاب مست باز اشحب را چو باشد خوی موش ننگ موشان باشد و آره و هوش، خوی آن هاروت و ماروت ای پسر، چون بگشت و دادشان خوی بشر در فتادند از نحن و صافون در چه بابل به بسته سرنگون لوح محفوظ از نظرشان دور شد لوح ایشان ساهر و مسحور شد پر همان و سر همان حیکل همان موسی بر عرش و فرعون مهان در پی خو باش و با خوشخو نشین خو پذیری روغن گل را ببین خاک گور از مرد هم یا بد شرف تا بر گور او دل روی و کف خاک از همسایگی جسم پاک چون مشرف آمد و اقبالناک پس تو هم الجار و سمدار گو گردل داری براو دلدار جو خاک او همسیرت جان می شود سرمه چشم عزیزان می شود ای بسا در گور خفته خاکوار، بی زست احیا و نفع و انتشار سایه برده او و خاکش سایه مند، صد هزاران زنده در سایه ویند داستان آن مرد که وظیفه داشت از محتسب تبریز و وام ها کرده بود بر امید آن وظیفه و او را خبر نه از وفات او حاصل از هیچ زنده وام او گذارده نشد الا از محتسب متوفا گزارده شد چنانکه که گفتند لیس من مات فستراحه به میت انما المیتو میت ال آن یکی در ویش دیار جانب تبریز آمد وامدار نه هزارش وام بود از زر مگر بود در تبریز بدرالدین عمر محتسب بود او به دل بهر آمده هر سر مویش یکی حاتم کده حاتم اربودی گدای او شدی سر نهادی خاک پای او شدی گربدادی تشنه را بهر زلال در کرم شرمنده بودی زاننوال ور بکردی زره را مشرقه بودیان در حمتش نالایقه بر امید او بیامد آن غریب کو غریبان را بودی خیش و نصیب بادرش بود آن غریب آموخته وام بی حد از عطایش توخته هم به پشت آن کریم او وام کرد که به بخششهاش واسق بود مرد لا ابالی گشت از او وام جو بر امید قلزم اکرام خوب وامداران داران او شاد کام همچو گل خندان از آن روز الكرام. گرم شد پشتش ز خورشید عرب چه استش از سبال بولهب چون که دارد اهد و پیوند سحاب کی غاید ز سکایانش آب ساهران واقف از دست خدا کین نهندین دست, دست و پا را دست و پا روبه که هست زان شیرانش پشت بشکند کله پلنگان را بمشت آمدن جعفر رضی الله عنهو گرفتن قلعه بطنهایی و مشورت کردن ملک آن قلعه در دفع او و گفتن آن وزیر ملک را که زنهار تسلیم کن و از جهل تحور مکن که این مرد معید است و از حق جمعیت عظیم دارد در جان خیش الا آخر چونکه جعفر رفت سوی قلعهیی قلعه پیش کام خشکش جرعهیی یک سواره تاخت تا قلعه بکر تا در قلعه ببستند از هزار. زهره نه را که پیش آید با جنگ اهل کشتی را چه زهره بانهنگ روی آورد آن ملک سوی وزیر که چه چار است اندر این وقت ای مشیر گفت آنکه ترک گویی که فن پیش او آیی به شمشیر و کفن گفت آخر نه یکی مرد است فرد گفت منگرخار در فردی مرد چشم بگشا قلعه را بنگر نکو همچو سیما بست لرزان پیش او شست در زین آنچنان محکم پی است گویییا شرقی و غربی باوی است چند کس همچون فدایی تاختند خیشتن را پیش او انداختند. هر یکی را او با گرز می فگند، سرنگون سر اندر اقدام سمند. داده بودش سنع حق جمعیته که همی زد یک تنه بر امت. چشم من چون دید روی آن قباد، کسرت اعداد از چشمم فتاد. اختران بسیار و خورشید اریکی است، پیش او بنیاد ایشان مندک است. گر هزاران موش پیش آرند سر، گربرا نه ترس باشد، نه هزار. کی با پیش آیند موشان ای فلان، نیست جمعیت درون جانشان هست جمعیت به صورتها فشار جمع معنی هین از کردگار نیست جمعیت ز بسیاری جسم جسم را برباد قایم دان چو اسم در دل موش اربد جمعیت جمع اگشتی چند موش از همیته برزدندی چون فدایی حمله خیش را بر گربه به محله آن یکی چشمش بکندی از زراب واندگر گوشش دریدی هم بتاب واندگر سوراخ کردی پهلوش از جماعت گم شدی بیرون شوش لیک جمعیت ندارد جان موش بچهد از جانش به با بانگ گربه هوش خشک گردد موش زن گربه ایار گربود اعداد موشان صد هزار از رمه انبوه چه غم قصاب را انبوهی هوش چه بندد خواب را مال ملک است جمعیت دهد شیر را تا بر گله گوران جهد صد هزاران گور دهشاخ و دلیر چون آدم باشند پیش سول شیر مال ملک است بدهد ملک حسن یوسف را تا بود چون ما مازن در رخ بنهد شعای اختره که شود شاه غلام دختره بنهدان در روی دیگر نور خد که ببیند نیم شب هر نیک و بد یوسف و موسی زهق بردند نور در رخ و رخسار و در ذات و صدور روی موسی بارق انگیخته پیش رو او تبره آویخته نور رویش آنچنان بردی بسر که زمرد از دو دیده مار کر او زهق در خواسته تا توبره گرددان نور قبیرا تو توبره گفت از گلیمت سازهین کان لباس عارف آمد امین کان کسا از نور صبری یافته است نور جان در تار و پودش تافته است جزچونین خرقه نخواهد شد سوان نور ما را بر غیر آن کوه قاف ار پیش آید بحر سد همچو کوه تور نورش بردارد از کمال قدرت عبدان رجال یافت اندر نور بیچون احتمال آنچه تورش بر نتابد ذره قدرتش جا سازد از قاروره گشت مشکات و زجاج جای نور که همه درد ز نور آن قاف و تور جسمشان مشکات دان دلشان زجاج تافته بر عرش و افلاک این سراج نورشان حیران این نور آمده چون ستاره زینزوها فانی شده. زین حکایت کرد آن ختم رسول از ملیک لایزال و لمیزل که نگنجیدم در افلاک و خلا در عقول و در نفوس با در دل مؤمن بگنجیدم چو ضعف بی چون و بی چگونه بیز کیف تا بدلالی آن دل فوق و تحت یابد از من پادشاهی ها و بخت بیچونین آینه از خوبی من بر نتابد نه زمین و نه زمان. بر دو اسب اس به تاختم بس عریز آینه برساختم هردم زین آینه پنجاه ارس بشنو آینه ولی شرحش مپرس حاصل اینکه که از لبس خیشش پرده ساخت که نفوز آن قمر را میشناخت گربودی پرده غیر لبس او پاره گشتی گربودی دو دوتو زاهنین دیوارها نافذ شدی توبره با نور حق چه فن زدی گشته بود آن توبره صاحب تفه بود وقت شور خرقه آرفه زان شود آتش رهین سوخته کوست با آتش ز پیش آموخته و هوا و عشق آن نور رشاد خود سفورا هر دو دیده باد داد. اولا بربست یک چشمو بدید نور روی او آن چشمش پرید. بعد از آن صبرش نماند و آن دگر برگشاد و کرد خرج آن قمر. همچنان مرد مجاهد نان دهد، چون برو زد نور تاعت جان دهد. پس زن گفتش ز چشم عبهره که ز دستت رفت حسرت میخوری گفت حسرت میخورم که صد هزار دیده بودی تا همه کردم نسار روزن چشمم ز مه ویران شده است لیک مه چون گنج در ویران نشست کی گزارد گنج که این ویرانم یاد آرد از رواق و خانم نور روی یوسف وقت عبور میفتادی در شباک هر قصور پس بگفتنده درون خاندر یوسف است این سو و سیرانو گذر زان که بر دیوار دیدندی شعا فهم کردندی پس اصحاب بقا خانه را کش دری چست آن طرف دارد از سیران آن یوسف شرف هین دریچه سوی یوسف باز کن بس شکافش فرجه آغاز کن عشق برزی آن دریچه کردن است که از جمال دوست سینه روشن است. پس هماره روی معشوقه نگر، این به دست توست بشنو ای پدر. راه کن در اندرونها خیش را، دور کن ادراک غیر اندیش را. کیمیا داری دوای پوست کن، دشمنان را زین زینصناعت دوست کن. چون شدی زیبا بدان زیبا رسی، که رهانت روح را از بی کسی. پرورش مرباغ جانها را نمش، زنده کرده مرده غم را دمش، نه همه ملک جهان دون هد صد هزاران ملک گوناگون دهد. بر سر ملک جمالش داد حق ملکت تعبیر به درس و سبق ملکت حسنش سوی زندان کشید ملکت علمش سوی کیوان کشید شه غلام او شد از علم و هنر، ملک علم از ملک هاسن استودتر،